سلام و درود به همه شما شنوندگان داشتنی کانال هزار افسان. امیدوارم روز و روزگار بر شما خوش باشه امروز هم در خدمتون هستیم با یک داستان زیبای دیگه به اسم حلقه تلسم شده بریم که با هم دیگه بشنبیم. یکی بود یکی نبود روزی روزگاری مرد جوانی به نام روزیموند زندگی می کرد اون خیلی مهربان و زیبا بود ولی برادر بزرگش برامینتو زشت و بدکار بود مادر از پسر بزرگ خیلی خوشش نمی اومد اما پسر کوچیکش رو روی تخم چشماش می گذاشت. این مسئله حسادت برامینتو رو برانگیخت به خاطر همین داستان وحشتناکی سر هم کرد تا برادرش رو نابود کنه اون به پدرش گفت که روزیموند قصد داره با ای که دشمن خانوادگیشونه دیدار کنه. همینطور گفت اون خیانتکاره و میخواد پدر رو با خوروندن زهر به هلاکت برسونه. پدر خیلی خشمگین شد و روزیموند رو به باد شلاق گرفت و اونقدر زد تا خون از بدنش جاری شد. بعد اون رو در اتاقی حبس کرد و سه روز بهش غذا نداد. بعد از سه روز، اون رو از خونه بیرون کرد و تهدیدش کرد اگه برگرده اونو میکشه. مادر بیچارش کاملا در شده بود و کاری جز گریه و زاری نداشت چون جرأت نمیکرد حرفی بزنه. پسر جوان با چشمان پر از اشک خونه رو ترک کرد بدون اینکه بدونه به کجا میره. بعد از چند ساعت سرگردانی به جنگلی انبوه رسید. شب شده بود. اون در پای تخت سنگ بزرگی بر روی خزه ها با ترانه لالایی جویباری کوچیک به خواب رفت. صبح که از خواب بیدار شد، در برابر خودش بانوی زیبار و سوار بر اسبی خاکستری با جل طلایی دید. بانوی سوار بر اسب آماده شکار بود. بانو پرسید، یک گوزن و چند تا سگ شکاری رو ندیدی که از اینجا ردشن؟ جوان جواب داد، نه بانو بانو یه سوار برعصب گفت غمگین به نظر میرسی آیا مشکلی داری؟ بیا این حلقه رو بگیر چون تو رو به خوشبخترین و قویترین مرد دنیا تبدیل میکنه فقط مواظب باش که از اون درست استفاده کنی اگه الماس رو به داخل بچرخونی چرخونی نامرعی میشی و اگه الماس رو به طرف بیرون بچرخونی دوباره ظاهر میشی اگه اون رو در انگشت کوچیکت بکنی به شکل پسر پادشاه در میای و خودت رو در قصری می میبینی. و اگر حلقه رو در انگشت چهارمت بکنی به شکل اولت برمیگردی پسر جوان تازه متوجه شد که اون بانوی سواره یک پری مهربانه وقتی حرفای پری به پایان رسید در دل جنگل فرو رفت. جوان میخواست هر چه زودتر حلقه را امتحان کنه اون خودش را نامرئی کرد اما میتونست هر چیزی رو ببینه و بشنوه اگه میخواست میتونست از برادرش انتقام بگیره بدون اون که خودش صدمه‌ای ببینه اون درباره اتفاق عجیبی که براش افتاده بود با مادرش صحبت کرد بعد حلقه رو در انگشت کوچکش کرد و تبدیل به شاهزاده‌ای شد که صد سوار بر اسبان بینظیر و گروهی نگهبان با لباسهای باشکوه همراهیش میکردند. پدرش با دیدن پسر پادشاه در خونه کاملا کوچک خودش خیلی شگفت زده شده بود. مات و مبوط مونده بود و نمیدونست چیکار کنه. روزیموند از اون پرسید که چند پسر داره. پدر جواب داد دو فرزند. روزیموند گفت میخوام اونها رو ببینم. فورا دنبالشون بفرست. میخوام هر دو رو به دربار ببرم تا آینده سرشار از سعادت براشون بسازم. پدر تفکری کرد و گفت پسر بزرگم اینجاست باعث افتخاری که اون رو به حضور حضرت معرفی کنم روزیمون با پافشاری گفت پسر کوچیکت کجاست؟ دلم میخواد اون رو هم ببینم پدر گفت: اون اینجا نیست مجبور شدم به خاطر خطایی تنبیهش کنم اون از اینجا فرار کرده روزیمون جواب داد به جای تنبیه باید راه درست رو بهش نشون میدادی به هر حال من پسر بزرگتر رو با خودم میبرم خودت هم همراه این دو نگهبان بیا. اونها تو را تا محلی که تعین خواهم کرد همراهی میکنند. دو نگهبان پدر رو همراه خودشون بردند. پری که در جنگل به پسر جوان کمک کرده بود پدرش رو دید و با چوب دست تلایی خودش که از چوب درخت قان درست شده بود بر اون زد و اون را به قاری بسیار ژرف و تاریک انداخت. پدر در اونجا تلسم شد. پری گفت همینجا بمون، تا پسرت برای نجاتت بیاد. در این اسنا پسر به قصر پادشاه رفت. درست موقعی به اونجا رسید که شاهزاده واقعی حضور نداشت. اون سوار بر کشتی برای جنگ به سرزمین دور رفته بود. باد خلاف جهت وزید. کشتیش رو در هم شکست و اون به جاهای ناشناخته کشونده شد و در اونجا اسیر دست وحشیان شد. روزیموند به جای شاهزاده که همه در نبودش گریه و زاری میکردند، پا به دربار گذاشت. اون به همه گفت در روز زمانی که در چنگال مرگ گرفتار شده بود، چند بازرگان اون را آزاد کردند. بازگشت اون همه رو خیلی خوشحال کرد. پادشاه چنان تحت تاثیر قرار گرفته بود که زبانش کاملا بند اومده بود، فقط تونست پسرش رو در آغوش بکشه. شادی و سرور ملکه هم حد و اندازه نداشت. به افتخار شاهزاده در سراسر کشور جشن بزرگی برپا شد یک روز شاهزاده دروغین به برادر واقعی خودش گفت برام این تو میدونی که برای اونکه که آینده ای روشن داشته باشی و خوشبخت بشی تو رو از روستای زادگاهت به اینجا آوردم اما متوجه شدم که تو دروغگویی و با این رفتارت باعث دردسر و گرفتاری زیادی برای برادرت روزیموند شدی اون اینجا پنهان شده و من دلم میخواد باهاش صحبت کنی و به گله اون گوش کنی. تو با شنیدن این حرف ها از ترس بر خودش لرزید. اون خودش رو به پای شاهزاده انداخت و به گناهانش اعتراف کرد. روزیموند گفت این کافی نیست. باید پیش برادرت اقرار کنی و از اون تقاضای بخشش کنی. اگه تو رو ببخشه، نشانه بزرگواری بیش از حد اونه چون تو سزاوار چنین محبتی نیستی. اون الان در اتاق من منتظر توه. من به اتاق دیگری میرم و تو رو با اون تنها میگذارم. برامینتو به اون اتاق رفت. روزیموند حلقه رو چرخوند و از دری دیگه وارد اتاق شد. همین که چشم برامینتو به صورت برادرش افتاد تمام وجودش سرشار از شرمندگی شد. اون التماسکنان کنان از برادرش طلب بخشش کرد و پذیرفت که به خاطر تمامی خطاهاش هاش سنگسار بشه. روزی موند اشک ریزان اون رو در آغوش کشید و همون لحظه اون رو بخشید و گفت من با پادشاه رابطه خوبی دارم میتونم ازش بخوام که سرت رو قطع کنه یا تو رو تا ابد به زندان بندازه اما ازش خواهم خواست که با تو هم مثل من مهربان باشه برامی تو معترف به گناهان و شرمند از کردارش بدون اون که بتونه سرش رو بالا نگه داره فقط گوش میداد بعد از این ماجرا روزیموند به همه گفت که میخواد به سفر بره و با شاهدخت سرزمین همسایه ازدواج کنه اما در حقیقت به دیدن مادرش رفت اون هر چیزی رو که در دربار اتفاق افتاده بود براش تعریف کرد و مقداری پول بهش داد با اینکه پادشاه دست اون رو برای هر کاری بازگذاشته بود هیچ وقت پا رو از گلیم خودش فراتر نگذاشت و از اختیاراتش سوء استفاده نکرد بعد از این قضايا جنگی سخت بین پادشاه، سرور اون و فرمانروای سرزمین همسایه که مردی بدکار و پیمان شکن بود در گرفت. روزیموند یک راست به قصر پادشاه ستمکار رفت. اون به کمک حلقه جادویی تونست در تمامی جلسات حضور پیدا کنه و از همه نقشه اونها سر در بیاره. به طوری که تونست با پیش دستی تمام نقشه هاشون رو نقشه براب کنه. اون فرماندهی سپاه رو در دست گرفت و در نبردی بزرگ پادشاه بدکردار رو شکست داد بلافاصله صلح برقرار شد و ادالت در حق همگان به اجرا درومد در این اوضاع و احوال تنها فکر پادشاه این بود که شاهزاده با شادختی ازدواج کنه که وارث حکومت سرزمین همسایه است شاهدخت مثل خورشید زیبا بود یک روز صبح در حالی که روزیمون در جنگلی که اولین بار در اونجا پری رو دیده بود سرگرم شکار بود، پرندگی خوشبختیش ناگهان در برابرش ظاهر شد. پری با لحنی موکم بهش گفت حواست رو جمع کن و با کسی که فکر می‌کنه تو شاهزاده هستی ازدواج نکن. هرگز کسی رو فریب نده. شاهزاده واقعی که همه مردم فکر می تویی جانشین پدرش خواهد شد. چون ادالت و انصاف اینطور حکم می کنه. برو، و اون رو که در جزیره دوردست به سر میبره پیدا کن من بادها رو به سمت بادبان کشتید میفرستم و تو رو راهی اونجا میکنم شتاب کن و در خدمت سرورت باش هر چند که برخلاف میلته درستکاری پیشه کن و اون رو به سرزمین خودش برگردون و سرشت نیکوت رو حفظ کن اگر این کارو نکنی به موجودی نابکار و بخت برگشته تبدیل میشی چون تو رو به وضع اولت با اون همه دردسر و گرفتاری برمیگردونم روزی موند این سخنان عاقلانه را از ته قلب پذیرفت و به همه گفت که بهش مأموریتی پنهانی داده شده تا به سرزمین همسایه بره سوار کشتی شد و باد موافق اون رو یک راست به جزیره برد که پری گفته بود در اونجا شاهزادی واقعی رو پیدا میکنه. جوان بخت برگشته اسیر ساکنان وحشی جزیره شده بود اونها اون را مسئول نگهداری گوسفندانشون کرده بودند روزیمون نامری شد و در چمنزارها به جستجوی شاهزاده بر اومد. وقتی پیداش کرد اون رو زیر ردای خودش گرفت و از چنگ اربابان ستمگرش آزاد کرد و به کشتی برد بادهای موافق دیگری به دستور پری به بادبانها وزیدند و کشتی رو به پیش روندند بالاخره اون دو جوان به حضور پادشاه رسیدند. اول روزیمون صحبت کرد و گفت شما باور کردید که من پسرتون هستم اما اینطور نیست من پسر واقعی شما رو اینجا آوردم. پادشاه که مات و مبهوت مونده بود رو به پسر واقعی خودش کرد و پرسید این تو نبودی پسرم؟ پس کی بر دشمنانم پیروز شده و این صلح شکومند رو برامون به ارمغان آورده؟ آیا حقیقت داره که کشید شکسته و اسیر شده بودی؟ و روزیموند تو رو نجات داده؟ شاهزاده جواب داد: بله پدر. اون بود که به جست جوی من اومد و منو از اسارت نجات داد. به همت اون بود که من سعادت دیدار دوباره شما رو به دست آوردم. اون در جنگا پیروز شده، نه من. پادشاه اصلا نمیتونه چیزی رو که میشنوه باور کنه. روزیموند با چرخوندن حلقه به شکل شاهزاده در اومد. پادشاه متحجرانه به دو جوان که شبیه هم بودن خیره خیره نگاه میکرد. اون برای روزیموند پاداش هنگفتی معین کرد. اما روزیمون نپذیرفت و فقط تقاضا کرد که در دربار مقام برادرش برامینتو داده بشه. چون اون از نگونبختیش بر اثر حسادت و ضعفهای نوع بشر حراسان بود. آرزوش این بود که به روستای زادگاهش و پیش مادرش برگرده و روزگارش رو صرف کشاورزی کنه. یک روز موقعی که در جنگل پرسه میزد پری رو دید. پری قاری رو که پدرش در اونجا زندانی بود بهش نشون داد و گفت که برای نجاتش چی باید بگه. اون با شادی اون حرفها رو تکرار کرد چون همیشه دلش میخواست که پدر پیرش رو به خونه برگردونه تا روزهای آخر زندگی رو با شادی سر کنه. به این ترتیب روزی موند رهایی بخش تمام ازایی خانواده شد. اون از کمک و یاری به کسایی که اون رو نابکار می لذت می برد. زمانی که در دربار بود با وجود خدماتی که به همه کرده بود تنها چیزی که به عنوان پاداش تقاضا کرد رهایی از زندگی در دربار و دوری از اون محیط فاسد بود اون می ترسید که با در دست داشتن حلقه وسوسه بشه که جایگاه از دست دادش رو دوباره به دست بیاره پس تصمیم گرفت که حلقش رو به پری برگردونه چندین روز به دنبال پری همه جا رو جستجو کرد. بالاخره اون رو پیدا کرد و گفت: میخوام حلقه رو بهت پس بدم. حلقه رو به طرف پری گرفت و ادامه داد: "این هدیه هموقت که نیرومنده، خطرناکم هست. میترسم از اون به غلط استفاده کنم. تا زمانی که اون رو دارم، لذتی از خلوت خودم و رضایت خاطری از کارهام نخواهم داشت." در تمام این مدت از زمان ترک دربار تا دیدار با پری برامین تو که فرصت ها رو برای عبرت گرفتن از گذشته از دست میداد، افسار آرزوهاش رو رها کرده بود و شاهزاده رو که به تازگی پادشاه شده بود، اقوا کرد که با روزیموند رفتاری ناپسند در پیش بگیره. پری که همه چیز رو میدونست، به روزیموند گفت: برادر بدجنست نهایت تلاشش رو میکنه تا نظر پادشاه رو نسبت به تو عوض کنه و تو رو از بین ببره. اون باید تنبیه بشه. چون لیاقت محبت تو رو نداره اون باید بمیره برای همین حلقه رو به اون میدم رزیموند با شنیدن این حرفها شروع کرد به گریه کردن پرسید منظور چیه که حلقه رو برای مجازات به اون میدی اون از اون فقط برای آزار دیگران استفاده میکنه تا اربابشون بشه پری جواب داد این حلقه برای یکی دارویی شفابخش و برای دیگری زهری کشنده است برای کسانی که ذات شرورند نیکبختی سرچشمه تمام شرارت هاست. اگر میخوای رزری رو تنبیه کنی، بهترین کار اینه که بهش قدرت بدی. خواهی دید که با این ریسمان خودش رو حلقاویز خواهد کرد. پری با گفتن این حرف ناپدید شد و یک راست به قصر رفت. اون خودش رو در هیئت پیرزنی با لباس های فقیرانه به برامینتو نشون داد و خطاب بهش گفت من؟ این حلقه رو از چنگ برادرت در بردم. اون با این حلقه به قدرت و عظمت رسیده بود. حالا اون رو به تو میدم. در استفاده از اون حواست رو جمع کن. برامینتو تو لبخند زنان جواب داد. من مطمئنن مثل برادرم رفتار نمی کنم. اون واقعا احمق بود که شازادر برگردند. میتونست خودش رو به جای اون جا بزنه. برامینتو تو به اون چه گفت صادقانه عمل کرد. اون از قدرت حلقه بدترین استفاده ها رو کرد. اون دست به هر خیانتی میزد و از هیچ کار زشتی رو گردن نبود. اون بدون اینکه رد پایی بر جای بگذاره تمام ثروت خاندان سلطنت رو تصاحب کرد. مردم شگفت زده شده بودند. پادشاه مات و مبوت مونده بود و مرتب در این مورد فکر می کرد. بالاخره ثروت بیکران برامینتو و گستاخی بیش از حدش باعث بدگمانی پادشاه شد. پادشاه به این باور رسیده بود که برامینتو حلقه جادویی رو به دست آورده برای اون که مطمئن بشه به غریبه که تازه به دربار اومده بود مقداری پول داد تا سر از حقیقت در بیاره غریبه از سرزمینی اومده بود که پادشاه همیشه با اون در جنگ بود ترتیب کارو دادند و غریبه موقع شب پنهانی پیش برامینتو رفت و بهش گفت که اگر اسرار حکومت رو آشکار کنه به مقام بالایی میرسه و پاداش شاگستهی دریافت میکنه. برامینتو قول داد که بگه و بلا فاصله با قبول مبلغی هنگفت گفت که حلقهی داره که اون رو نامرعی میکنه و به وسیله اون میتونه به هر جای پنهانی نفوذ کنه. طعم این پیروزی مدت زیادی به دهان برامینتو مزه نکرد. روز بعد به دستور پادشاه اون رو دستگیر کردند و حلقه را از اون گرفتند. اون رو بازرسی بدنی کردند. و کاغذهایی رو که ثابت میکردن اون به کشورش خیانت کرده، پیدا کردند. روزیموند به قصر برگشت تا برای نجات برادرش وساطت کنه. اما کاری از پیش نبود. برامینتو به مرگ محکوم شد. حلقه که در دست روزیموند بسیار مفید بود، برای برامینتو مرگ رو رقم زد. پادشاه به خاطر سرنوشت تلخ برامینتو به روزیموند تسریت گفت و حلقه رو بهش داد. اون حلقه، دیگه برای روزیموند غمگین هیچ ارزشی نداشت. اون موقع برگشت بخونه در جنگل به دنبال پری گشت. وقتی پری رو دید گفت حلقه رو بگیر. مرگ برادرم برام عبرتی شد. اون رو پیش خودت نگه دار. این حلقه باعث مرگ برادرم شد. آه اگر حلقه رو نگرفته بود حالا زنده بود و پشت پدر و مادر پیرم زیر بار غم و اندوخم نمیشد. شاید اگر عقل و درایت داشت هرگز به آرزوها و هوسهاش اینقدر میدان نمیداد. در این چند روزه ای عمر داشتن قدرت چقدر خطرناکه حلقه رو بگیر چون هر اون رو داشته باشه وقت واژگون به سراغش میاد التماس میکنم، لطفی کن و هرگز اون رو به کسانی که عزیز هستند نده امیدوارم از این داستان زیبا لذت برده باشید